بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش با برکت است ذاتی که پادشاهی باید اوست و او بر همه چیز تواناست آنکه مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدام یک از شما از روی عمل و کاری که انجام میدهید بهتر هستید و او صاحب قدرت منعی و آمرزگار است او که هفت آسمان را طبقه طبقه آفرین در آفرینش خدای رحمان هیچ تفاوتی نمی بینی پس باری دیگر نگاه کن آیا شگاف یعنی خللی را می بینی؟ و باز نگاه را برای بار دوم برگردان نگاهی تو سوی تو ناکام و خسته باز می گردد و حقا که آسمان دنیا را با چراها آراستیم و آنها را رانندگان شیاطین گردانیدیم و برای ایشان عذاب دوزخ را آماده ساختیم و برای کسانی که به پروردگار خیش کافر شدند یعنی از پروردگار خیش انکار کردند عذاب دوزخ است و چی بد جای بازگشت است دوزخ؟ شون در آن انداخته شوند بانگی ناهنجاری را از دوزخ می شنوند در حالی که می جوشد نزدیک است از شدت خشم بکفند. هر زمانی که گروهی در آن انداخته می شود نگهبانان دوزخ از ایشان میپرسند، آیا بیمدههندایی و شما نیامده بود؟ ایشان در جواب می گویند بلی یقین بیم دههندایی برای ما آمده بود؟ ولی ما او را تکذیب کردیم و گفتیم خداوند هیچ چیزی را نازل نکرده است شما نیستید مگر در گمراهی بزرگی و می اگر در دنیا گوش فرا می دادیم یا تعقل می کردیم حالا در زمره اهل دوزخ نمی بودیم آنگاه با گناهان خود اعتراف کردند دوزخیان از رحمت الهی دور باشند بیگمان برای کسانی که از پروتگارشان غایبانه میترسند آمرزش و مرزش و پاداشیست بزرگ. سخن خود را پنهان سازید یا آن را آشکار گویید بیگمان خداوند در هر حالی با آنچه در سینه‌ها ها است آگاه می باشد آیا کسی که مخلوقات را آفریده است از احوالشان آگاهی ندارد در حالی که او از اسرار دقیق با خبر و به هر چیز آگاست اوست که زمین را برای شما نرم و هموار گردانید پس در نوحی آن بروید و از روزی که در آن تعبیه شده بخورید و به سوی اوست رستاخیست آیا از کسی که پادشاهی او در آسمان است ایمن شده اید که شما را در زمین فرو برد پس ناگاه زمین بلرزه افتد؟ آیا از کسی که پادشاهی او در آسمان است امن شده اید؟ که بر شما طوفانی را از سنگریزه بفرستد پس با زودی میدانید که چگونه بود بیم من؟ و من کسانی پیش از آنها حق را تکذیب کردند پس چگونه بود قهر و ناخشنودی من؟ آیا با سوی مرغان بالگشاده بالای سر خود ندیده مرغانی که بال خود را باز و جمع می کند؟ نگاه نمی دارد ایشان را مگر خدای مهربان بگمان او به هر چیز بیناست آیا کیست آنکه لشکر شما باشد و در برابر عذاب خداوند رحمان شما را مدد کند کافران نیستند مگر در فریب اوهام خویش آیا کیست آنکه با شما روزی بدهد اگر خداوند روزی خود را از شما باز دارد نخیر بلکه ایشان در سرکشی و فرار از حقیقت لجاجت می وزد. پس آیا کسی که به رو افتاد و با لغزش راه می رود رهیاب است یا کسی که با قامت رسا به راه راست به رفتار خود ادامه می دهد بگو اوست که شما را از عدم آفرید و, و برای شما گوش چشمها و دلها قرار داد اندک است شکرانی که شما در برابر آن می‌کنید. بگو اوست که شما را در روی زمین پراگنده ساخت و باز به سوی او جمع کرده می شد می گویند این وعده چی وقت به سر می رسد اگر راست گویی بگو علم آن صرف نزده خداست و من صرف بیم دهنده آشکارم پس چون آن وعده الهی را نزدیک بینند روحای کافران زشت و درهم کشیده می شود و با ایشان گفته می شود این است تومان چیزی که تقاضای آمدن آن را می کردید بگو آیا چی نظر دارید اگر خداوند مرا و آنانی را که با من هستند هلاک سازد یا بر ما مرحمت کند پس کیست که کافران را از عذاب درناک نجات دهد؟ بگو او خداوند رحمان است با او ایمان آوردیم و بر بروی توکل نبودیم پس به زودی در خواهی یافت. چی کسی در گمراهی آشکار است؟ بگو آیا چی نظر دارید؟ اگر آب مورد استفاده شما به زمین فرو رود پس کیست که آب صاف و جاری را در دسترس شما قرار دهد